سلام آقا، روز بخیر سلام، خوش آمدیده ما دو جفت کفش ورزشی میخواهیم یک جفت برای من و یک جفت برای دوستم بفرمایید اینجا مدلهای های مختلف کفش ورزشی اینجاست محمد، این کفش چطور است؟ خوب است؟ آره، قشنگ است اما به نظرم برای تو کوچک است. ببخشید آقا. از این مدل شماره بزرگتر دارید؟ شما چه شماره می خواهید؟ و دو یا چهلو سه. من هم شماره و یک می خواهم. همین مدل. نه. من آن کفش سفید را می خواهم. چند اندازه صبر کنید بفرمایید این دو کف برای شما چطور است اندازه است نه این کمی تنگه شما بزرگتر دارید همین مدل بله یک شماره بزرگتر بله داریم متشکرم